رابرت فراس در اثرش راه نرفته میگوید این سخن را به آه خواهم گفت جایی در روزگاری پس از این دو راه در جنگل از هم جدا شد و من من آن را که کمتر سفر شده بود برگزیدم و تمام تفاوت از اینجا است اون تغییر خوشایند خود را دگرگون کنید ركن پنجم یادگیری و تفکر مؤثر ساده ترین و دشوارترین، مهمترین و غیر ضروری ترین است. اگر این فصل به گوش شما آشنا آید، آن را نخوانید. از یک نظر چهار رکن قبلی تفکر و یادگیری مؤثر کل تصویر را ترسیم می کند. هدف هر یک از چهار روش سابق تبدیل شما به فردی با تفکر و یادگیری بهتر است. در فلسفه یونان باستان انصر ناب ای تغییر ناپذیر بود که قلمرو فرازمینی از آن ساخته شده بود. اما عجیب است که اینجا رکن پنجم تغییر ناپذیر خود تغییر است. تغییر در واقع هدف کل داستان است. ما از طریق تجربه خود با صدها هزار دانش معلم، متخصص، مدیر کسب و کار و فراگیران مادامل عمر دریافته که اگر شما درس های کتاب را دنبال کنید، میتوانید در مرتبه امیقتر یاد بگیرید و فکر کنید. شما به ایده های خلاقانه فکر می کنید و در سراسر زندگی خود موفق می شوید. رکن ناب در واقع درباره قسمت اگر درسها را دنبال کنید جمله قبل است. این فصل درباره مراحل تبدیل شما به یک آموزنده و متفکر مؤثرتر است است. به ضرب المثل قدیمی زن دلیل دشوار بودن شادی این است که بسیار آسان است. ادعا نمی کنیم معنای این گزاره را دقیقا فهمیده ایم، اما گزاره فوق القا کننده ایده ای است که در اینجا مناسب به نظر میآید. در یک معنا مورد دشواری درباره اتخاذ راهبردهای مؤثر یادگیری و تفکر وجود ندارد شما صرفاً باید عادت همیشگی قبول مرتبه نسبتاً سطحی فهم را کنار بگذارید و شروع به فهم عمیقتر کنید باید به سادگی نیروهای محدود کننده در زندگیتان را رها کنید و اجازه تجربه شکست در راه موفقیت را به خود بدهید باید درباره تمام موضوعاتی که در تمام آن سالها مسلم فرض کرده اید تردید کنید. باید هر وجه از دنیای خود را به شکل جریان دائم تغییر بینش ها و ایدهها بنگرید. شما به تغییر نیاز دارید. البته در واقعیت تغییر به ظاهر دشوار است. ساده نیست. اما مسیر تغییر مانند مسیر شادی نه نیروی اراده و کار سختتر بلکه اندیشیدن به شکل متفاوت است. چهار رکن ابتدایی این تفکر موثر کار اصلی را انجام می دهند. آنها شما را به فهم ایده های بنیادی جستجوی اجزای اساسی و گسترش دانسته هایتان دعوت می کنند. آنها سوالات هدفمندی طرح می کنند که باید از خود و دیگران بپرسید و بر اساس آن به ایده های نو فکر کنید. سوالاتی که به ارزش شکست و خطا در مسیر موفقیت اشاره می کنند. چهار رکن مانند دستورالعمل صحیح کتاب تغذیه اند. اگر فلان غذا را مصرف کنید و فلان خوراکی دیگر را مصرف نکنید و به این شکل تمرین کنید وزن کم می کنید. اما مسئله واقعی غالبا پیگیری دستورالعمل است. رکن ناب درباره چالش تبدیل شدن به است که درس ها را پذیرا می شود. رکن پنجم یک فرادرس است و به شما توصیه می کند به تغییر سازنده عادت کنید. از تغییر دادن هر جزء از خود نہراسید. شما هنوز در آن وضعیت قرار دارید، اما بهتر. همکار ما بیلگای داستانی درباره مدیری که می‌خواست مدرسه‌ای را تغییر بدهد تعریف کرد. او یک سال تصمیم گرفته بود تدریس را با برگزاری کلاس‌های ماهانه فنون سخنوری، هنگام تدریس توسط خبرگان آموزش، برای معلمان خود ارتقا بخشد مدیر پس از شش ماه متوجه شد یکی از دبیران در کلاس‌ها شرکت نمی‌کند. او را صدا کرد و پرسید چرا در سمینارهای نحوه تدریس بهتر شرکت نمی کنید؟ دبیر جواب داد نیازی به شرکت در کلاس ندارم. از قبل میدانم چگونه بهتر از این که هستم درس بدهم. چهار رکن اول به شما امکان می از آنچه هستید بهتر فکر کنید. از آنچه هستید بهتر یاد بگیرید و از آنچه چه هستید خلاقتر باشید.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 تعریف حماقت انجام دادن کار تکراری و انتظار نتیجه متفاوت و اکنون اقدامی کاملا متفاوت کاغذ و مدادی بردارید، چشم خود را ببندید و جمله تا جایی که بتوانم تمیز می و هر اشتباهی که بکنم از روی امنیس را بنویسید حال چشم خود را باز کنید و به آنچه نوشته اید نگاه کنید تمرین را این بار با چشم باز تکرار کنید. نتیجه شما به شکل امیدوار بسیار بهتر خواهد بود. نوشتن با چشمان باز کاری متفاوت و ساده تر از نوشتن با چشمان بسته است. دورنمای ظریفی درباره ترقی و عملکرد بهتر وجود دارد که میتواند نحوه برخورد شما با اقدام به تغییر خودتان را اصلاح کند. به عبارت دیگر افرادی که بهتر عمل می کنند، گویا کاری متفاوت انجام می دهند، نه کاری مشابه به شکل بهتر. اگر تنیس بازی می کنید، به زمین تنیس بروید و اجازه دهید کسی توپ تنیس را به طرف شما پرت کند. ابتدا چشمان خود را ببندید و به آن ضربه بزنید. سپس اجازه دهید همبازی شما به توپ ضربه بزند و مشتاقانه در حالی که جا عوض می کنید به آن نگاه کنید تا زمانی که به راکت شما برخورد کند. در هر دو حالت قصد دارید به توپ ضربه بزنید، اما ضربه زدن به تو با چشمان بازکاری متفاوت با ضربه زدن به آن با چشمان بسته است. هنگامی که بازیکنان بزرگ تنیس بازی می کنند توپ را بهتر از یک مبتدی تماشا می کنند. آنها کار ساده‌تر ضربه زدن به توب هنگام تماشای آن را انجام می‌دهند نه کار دشوارتر ضربه زدن به توب از راه تخمین محل آتی آن که صرفاً مبتنی بر مکان توب در لحظه عبور آن از فراز تور است وقتی دانشجویان فیزیک از روش حفظ کردن فرمول ها بدون درک معنا یا علت صحت آنها استفاده می‌کنند کار دشواری انجام می‌دهند خواندن فیزیک با چشمان بسته دانشجویانی که به ایده های نهفته در فرمول پی پیمی برند، کار متفاوتی انجام می دهند، آنها با چشمان باز کار می کنند. دانش بهتر کار ساده تری می کنند. در ذهن دانش فهم معنا و اقلانیت نهفته در فرمول ها گاهی غیر ضروری و انحرافی جلوه می کند، فهم در واقع مستقیماً به کار آتی ساده تر و نتایج بهتر منتهی می شود اگر دانش آموزان متوسط تاریخ بخواهند برای شرکت در آزمونی درباره جنگ جهانی دوم درس بخوانند، چه بسا با موارد حفظ کردنی از قبیل فهرست کشورهای متحد مواجه می شوند. ممکن است نام کشورها فقط چند واژه باشد و گروهبدی ها چه بسا دل بخواهی به نظر میآید؟ اما اگر دانش آموزان با عوامل مربوط به آن لحظه آشنا شوند، نقشهها را ببینند، روش های حمل و نقل و ارتباط آن زمان را بشناسند و آن لحظه را بخشی از ماجرای بزرگتر جریان روابط انسانی بدانند که پیش از وقوع جنگ آغاز شده و پس از آن ادامه یافته است، آنگاه لحظه تعارض برایشان پرمعناتر می شود. شاید گمان کنید این توصیف مزهک است زیرا به این معناست که نسبت به فهرست اصلی کوچکتر رویدادهای تاریخی در جنگ جهانی دوم باید وقایع تاریخی بیشتری را حفظ کنیم اما منظور ما این است که یادگیری جریان تاریخ یا هر موضوع دیگر هر قسمت را پایدارتر و معنادارتر می کند عجیب است که حفظ کردن تعداد کمتر وقایع منزوی دشوارتر است فرض کنید بخواهید فهرست واژگان را حفظ کنید. اسب ترتیب زیرا آسان در ما قبل از جمله منطقی است. آیا به یاد سپاری فهرست واژگان طولانی تر زیر آسانتر و سریعتر نیست؟ حفظ کردن این جمله آسان است زیرا واژه به ترتیب منطقی ظاهر می شوند. به عبارت دیگر ما اسب را قبل از گاری قرار نمی دهیم. جواب آریست. زیرا زمینه متن به واژگان به ظاهر بیمعنا و متمایز معنا می بخشد. افرادی که در هر کاری موفقترند وظیفه خود را با چشمان باز انجام می دهند. یعنی فعالیت آنها با فعالیت افراد کمتر موفق تفاوت دارد. مردم اغلب تفاوت پزشک ماهر و پزشک کمتر ماهر را چنین توصیف می‌کنند که پزشک ماهر کارش را بهتر انجام می‌دهد اما بنا به چشمانداز مفیدتر و دقیقتر پزشک ماهر اساساً کار متفاوتی انجام می‌دهد کاری که شما نیز می‌توانید بر آن مسلط شوید وارن بافت می‌گوید در قایقی که به شدت سوراخ است سرف انرژی برای جابجا کردن ظروف از صرف انرژی برای درزگیری شکاف ها بسیار مفیدتر است برای کسب مهارت و موفقیت بیشتر چه بسا به تغییر دادن کاری که میکنید بیاندیشید نه به نحوه و کیفیت انجام دادن کار به جای این فکر که بهتر انجام بده این طور فکر کنید که طور دیگر انجام بده اگر میخواهید مطلبی را فرا بگیرید به جای حفظ کردن قواعد و مطالب به فهم درست و عمیق مبانی تمرکز کنید. اگر می خواهید به ایده های نو بیاندیشید، به انتظار الهام نباشید. به جای آن از راهبردهای تفکر دگرگون کننده از قبیل اشتباه کردن، پرسیدن و تماشای جریان ایده ها استفاده کنید. روش برانگیختن تفکر مؤثر تغییر کارشناسانه.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 نوازنده ماهر موسیقی را به خاطر می‌سپارد و از این رو می‌تواند هنگام اجرای آن پرشای بلند به صفحه کلید نگاه کند این کار چه بسا از خواندن نت‌ها هنگام ضربه زدن به کلیدهای درست ساده‌تر باشد در سطحی ظریف‌تر موسیقیدان تمام عیار ساختار آکورد را می‌فهمد و هر صدای موسیقی را می‌شنود چنانکه که کار فرد ماهر با کار کسی که صرفاً کلیت های لازم را به خاطر می متفاوت است. دانش خنگ هر انسانی خاص است. انسانها هنگام تولد با بدنی بزرگ یا کوچک، ازولانی یا انعتاف به دنیا می هر کسی نمیتواند دونده ماراتون در طراز جهانی باشد، حتی اگر فراوان تلاش کند و هر کسی نمیتواند بزرگترین فیزیکدان نظری دنیا شود. اما نکته حیجان انگیز فاصله بین توانایی بلغوه مردم و دستاورد بالفعل آنهاست. ماری را به خاطر دارید؟ او دانشجویی بود که گمان میکرد کرد، نمیتواند مسائل ریاضی را حل کند. اما با اشتباه کردن و مواجهه با سوالاتی که به او اجازه میداد مسیر اشتباهات خود را تا مقصد آنها دنبال کند توانست به جوابی خلاقانه و بدی برای سوالی چالش برانگیز درباره بی‌نهایت بیاندیشد نکته داستان پتانسیل عظیمی است که در همه ما نفوذ میکند ماری با استفاده از شیوه های تفکر که میتوان آنها را تمرین و کسب مهارت کرد به طور گسترده موفق شد و شما هم میتوانید آیا گسترره پیشروی فرد دچار محدودیت است؟ بله، اما مرزها در دور دست قرار دارند بسیار دورتر از آنچه مردم به منزله محدودیت خود قلمداد داد می کنند می توانیم ادعا کنیم که هر فرد در هر کاری توانایی یکسان دارد و با اینکه ادعای فوق چه واب فروش بیشتر کتاب منطی شود اما واقعیت ندارد به هر حال واقعیت این است که شما می توانید بیش از وضع کنونی خود فرا بگیرید و خلاق و موفق باشید. تو می توانی. برای تفکر مؤثر اختلاف در توانایی ذاتی در سایه آدات و روش ها قرار می گیرد. افراد به ظاهر تیزهوش به این معنا که فوراً مطلب را درک کنند و بتوانند بدون سردرگمی با پیچیدگی ها مواجه شوند به ندرت جزو برترین افراد فعال، خلاق و مؤثر به شمار می‌آیند. برخی افراد تیزهوش می توانند به طور ای مطالب پیچیده را ساده کنند. اما چه بسا در آزمون چشمنداز ها و ایده نو ناموفق باشند؟ چه بسا شما این افراد را غیر خلاق بنامید؟ اما چنان که در این کتاب خواندید خلاقیت کیفیتی مادرزاد نیست. دستیابی به ایده نو مستلزم عادت به روش های تفکر است که به ایده نو منتهی می شود. خلاقیت مهارتی است نه شاخصهای مادرزادی چون داشتن چشمان آبی. راز حل مسائل و دستیابی به ایده نو نه یافتن الگوهای متفاوت، بلکه استفاده از راهبردهای متفاوت تفکر دگرگون کننده است. از ساعت 1 تا 9999 چه بسا درباره قاعده ده هزار ساعت شنیده باشید بر این اساس که شخص برای تبدیل شدن به بهترین ها در سطح جهانی در هر فعالیتی از هنر تا موسیقی و ورزش و جانورشناسی به ده هزار ساعت تمرین نیاز دارد. این کتاب درباره فعالیت از ساعت یک تا نه بود. جادوی قاعده ده هزار ساعت در ساعت ده هزارم اتفاق نمیافتد. جادو جریان انباشتن پیشرفت تدریجی است که در آن پیشروی از کسب فهم عمیقتر، اشتباه کردن و یادگیری از آنها پرسیدن، و مشاهده تحول ایده ها ناشی می شود. خبرگی در واقع یک پیوستار است. انشتین پیشرفت می کند. در سال 1979، مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی، همایش صد سالگی انشتین را به افتخار صدومین سال روز تولد آلبرت انشتین برگزار کرد. یکی از سخنرانان داستان خود را در مقام دستیار جوان انشتین تعریف کرد او گفت هنگام مصاحبه با انشتین اقرار کرده بود که با نسبیت آشنا نیست و انشتین پاسخ داده بود اشکالی ندارد من با نسبیت آشنا هستم شرح سخنران درباره کار با انشتین سرزنده و سرگرم کننده بود اما به این نقل قول با تفکر دگرگون کننده متناسب است آنیشتاین نابغه بود، اما سخنران به ای اشاره کرد که شاید بر موفقیت انشتین به نحوی پرت کند. در حالی که توضیحات دیگر درباره استعداد او این ویژگی را ندارد. انشتین و دستیارش ماهها به مسئله خاصی فکر می‌کردند. انشتین برای حل مسئله راه بردی در ذهن داشت و مصررانه آن را دنبال می کرد. روزی دستیارش نامهای دریافت کرد که شامل کار فیزیکدانان دیگری بود و نشان می داد روی انشتین جواب نمی دهد. دستیار مجبور شد اخبار ناگوار را به انشتین برساند. او دلیل عدم موفقیت روی کرد را به انشتین توضیح داد با اینکه میدانست می دانست ماهای طولانی کار سخت در راه جستجوی بی سمر تلف شده است. انشتین با ذهن باز گوش فراداد و استدلال را فهمید روز بعد انشتین به سراغ روی کرده کاملا متفاوت دیگری رفت که حاوی چشمنداز ای بود و مسئله را به طور کامل حل کرد انشتین بین نظیر بود اما در این حال در برابر مدرک قانه کننده آماده تغییر نیز بود خرابکاری بیشتر پیشرفت‌های عمیق شما در زندگی غالباً ناشی از تجربیاتی است که زندگی کنونی شما را به چالش می‌کشد. تصویر بنا کردن زندگی از موفقیت قاطعی به موفقیت قاطع دیگر رویای خارق‌العاده‌ای است، اما تنها یک خیال است. شما در عوض باید ایده‌های کهنه را در مواجهه با چالش‌ها رها کنید تا ساختارهای بهتری بسازید. صداهای مخالف با باورهای خود را خاموش نکنید. به زمزمه‌های تردید گوش فراداهید و تردیدها را به آزمون‌های مفید و ثمر بخش فرضیات، ایده‌ها و نظریات تبدیل کنید. اگر از تردیدها به طور مؤثر استفاده کنید، به توانایی تبدیل می‌شوند. نمایش‌های سیاسی در مناظره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی این نگرش بیفایده را تبلیغ می‌کنند که تردید نشانه ضعف است، اما در واقعیت، تردید نشانه توانایی است. هنگام تماشای سیاست مداران در تلویزیون که سر هم فریاد میکشند، حتی یک بار هم نشینده یکی از آنها به دیگری بگوید ایده بهتری بود میخوام ذهنیت خودم را تغییر بدم. ذهن تغییر نپذیر، ذهن بسته است. نتیجه آن در سیاست فقدان سفت و سخت نوآوری و انعتافت پذیری است. بنبست تردید میتواند آزار آزاردهنده باشد اما قرار نیست چنین باشد. شما می توانید تردید را به راهنمای آرامش بخش و بینشانگیز در مسیر تغییر واقعی تبدیل کنید اگر به ایده نو توجه کنید و به دنبال عقاید و امیال متغیر بروید آنها شما را به جهاتی هدایت می کنند که در آغاز انتظار آن را نداشتید در مدرسه تعداد زیادی از دانش آموزان برای انتخاب حرفه در پزشکی یا حقوق آماده می شوند اما تنها به این دلیل که از گزینهای دیگر آگاه نیستند بدون توجه به وضعیت کنونی خود در زندگی می توانید هایی را که تا کنون نداشته اید در خود تقویت کنید و با این اقدام فرصت هایی بر شما گشوده می شود که تا کنون به خواب هم نمی دیدید در بیگ لیک. آر المور یکی از مشهورترین معلمان ریاضی عواست قرن بیستون بود او کلاسش را به روشی بسیار عجیب اما مؤثر اداره می کرد او هرگز درس نمیداد. در عوض سوالات سخت می‌پرسید و از دانش آموزان می‌خواست به طور مستقل بدون کمک دیگران به آنها جواب بدهند. در کلاس پروفسور مور از دانش آموزی که کم از بقیه بود آغاز می‌کرد و از او می‌پرسید: آقای م... می‌توانی به سوال بعد جواب بدی؟ اگر دانش آموز نمیتوانست به سوال جواب بدهد، پروفسور مور همان سؤال را از دانش آموز زعیف بعدی میپرسید و به این ترتیب کارش را ادامه میداد تا به دانش آموزی برسد که ادعا میکرد میتواند به سوال جواب بدهد. دانش آموز پای تخت سیاه میرفت و راه حل خود را مینوشت. اگر دانش نقصی در جواب نمیدیدند، پروفسور مور به سادگی به سراغ سؤال بعدی میرفت. سم وای دانش آموز یکی از کلاس های ریاضی مور بود و متوجه شد که نسبت مشکوک ترین دانش آموز کلاس به او داده شده است. او در کل ترم پاییز حتی به یک سوال هم جواب درست نداده بود. در آن زمان ترم اول تا چند هفته پس از تعطیلات زمستانی طول کشید. سم در ایام تعطیلات زمستانی با والدینش به بگلیک تگزاس رفت. تنها شانس او برای قبولی در این کلاس این بود که به نحوی راهی برای پاسخ دادن به آن سوالات دشوار بیابد. او در اتاقش خلوت گزید و فکر کرد. او به سراغ اولین سوالات ترم رفت. با نگاه به مطالب آغاز ترم، کار به تدریج معنادار شد. او فهمید چرا قضایای اولیه درست بودند. او شروع به پیشروی از ابتدا کرد و سوال به سوال جوابهای ساختیافته استواری به دست آورد که مطلب را به روشی عمیق و معنادار به او آموخت. او در آخر به جای رسیده بود که با سوالاتی که هنوز در کلاس مطرح نشده بود، دست و پنجه نرم کرد. روز اول پس از تعطیلات، پروفسور مور مانند قبل رو به سم کرد و پرسید: آقای وای، میتونی به سوال 26 جواب بدی؟ سم با احساس غرور جواب داد: بله آقا، میتونم. و توانست او در کمال شگفتی دانش آموزان دیگر کلاس جواب درست سوال 26 را داد اما پروفسور مور تعجب نکرد او امدن دانش آموزان را به چالش می‌کشید تا خود آنها به دنبال این باشند که چگونه به دانش آموز ناب تبدیل شوند چگونه ایده ها را عمیقاً بفهمند و چگونه جریان ایده ها را ببینند وقتی سمن نشست پروفسور مور پرسید، آقای وای میتونی سوال 27 رو حل کنی؟ سم جواب داد بله آقا میتونم. سم در دو هفته آخر ترم به تمام سوالات باقیمانده جوابهای درست داد. آقای وای در بیگلیک به دانش آموز ناب تبدیل شد. او به تحصیل ادامه داد و دکترای ریاضیات گرفت و دکتر وای در مقام استاد ریاضیات در دانشگاهی معتبر هرفهی طولانی و موفق داشت. هر معلمی نمیتواند محیط کلاس را چنان تثبیت کند که در آن موفقیت دانش آموز با تبدیل شدن به یادگیرنده نوآور و مؤثر تناظر مستقیم داشته باشد. اما جدا از مهارت‌های معلم دانش آموزان میتوانند به هدف توصیعی عادات مادام العمر تمرکز کنند که آنها را برای همیشه تغییر میدهد. اندیشه های نهایی تبدیل شدن به خود نابتان مثال آخر ما درباره اثر دگرگون کننده تغییر واقعی ماجرای دوست عزیزمان لی است لی میخواست خوشندامتر شود او به جای پرداختن به روش سریع اما غیر موثر رژیم درمانی بر اساس مد روز معجزه آسا نگرشش را به خود و رفتارش تغییر داد او شروع به مصرف غذاهای سالم کرد و به جای استفاده از آسانسور از پله ها بالا میرفت لی به کلی تغییر کرد آدمی دیگر شد. چهارده ماه بعد شش کیلو وزن کم کرده بود و امروز سالم و تندرست است. او زندگیش را صرف مبارزه با خودش برای تغییر نوع تغذیه و کاری که ترجیح میداد نکرد. در عوض اکنون شخصی است که تغذیه سالم و ورزش مناسب به بخش طبیعی و راحت زندگی روزمره اش تبدیل شده است. شرایط جسمانی قوی او پیامد ناگزیر عادات اوست. علاوه بر این هر شخص قوی که از آن آدات پیروی کند به همان اندازه سالم و تندرست می شود. به همین ترتیب اگر ارکان تفکر این کتاب را به کار ببرید و آن آدات را به بخشی از خود تبدیل کنید قدرت و ظرفیت ذهنی خود را افزایش می دهید و به متفکری مؤثرتر و خلاقتر تبدیل می شوید. علاوه بر این با استفاده از این ارکان در مورد خود می توانید به تعریفی که از خود دارید از جمله ارزش ها،, ها، اخلاقیات و باورهایتان وضوح بیشتر ببخشید جمله دکارتی می اندیشم پس هستم به این معناست که تفکر هستی شما را اثبات می کند استفاده از تفکر مؤثر شما را به ناچار به خود نابتان سوق میدهد. دموکراسی نزد پدران بنیانگذار آمریکا با استاد اراده مردم بود و مردم از نظر آنها شهروندان عاقل و با تفکر مستقل بودند که موضوعات زمانه خود را میفهمیدند و خرد روشن خیش را به تصمیم‌های متین در جهت نفع جامعه تبدیل می‌کردند دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری به صداهای خردمندان نیاز دارد صداهایی که بتواند از لافزنی و هیجانات سطحی صرف نظر و در عوض بر تفکر آرام و عاقلانه درباره اهداف و پیامدهای بلند مدت تمرکز کند. ارکان تفکر موثر به شما کمک می کند به شهروند ناب جهان تبدیل شوید و به طور شخصی و ای محلی و جهانی سهم خود را ادا کنید. در مدرسه یا بیرون، جوان یا پیر میتوانید به انتخاب خود شخصی باشید که فرصت‌های بیکران را می‌بیند، از فرایند مادام عمر رشد و کشف شخصی لذت می‌برد و با چالشها و موانع، با نوآوری و خلاقیت مواجه می‌شود. برای فهم استوار تلاش کنید. خاک شکست را بپذیرید و از گامهای نادرست درس بگیرید. آتش. <تصفيق> همواره سوالات چالش برانگیز خلق کنید و بپرسید. هوا. آگاهانه جریان ایدهها را در نظر بگیرید. آب. البته